سیندرلا و کفش شیشه‌ای و چهل افسانه دیگر نویسنده آندرو لنگ مترجم سوده کریمی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سهیلا بوستانی سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید. اسم داستانمون هست داستان شاهزاده احمد و پریبانون. روزی روزگاری سلطانی بود که سه تا پسر و یه برادرزاده داشت. بزرگترین شاهزاده حسین، دومی علی و کوچکترین اونها احمد نام داشت و شاهزاده خانومی هم که برادرزاده سلطان بود اسمش نورالنهار بود شاهزاده خانم نور و نهار دختر کوچکترین برادر سلطان بود اون پدرش رو تو کودکی از دست داده بود و سلطان مسئولیت تعلیم و تربیتش رو قبول کرده بود و به قصر خودش آورده بود و اون رو همراه پسراش بزرگ میکرد. سلطان تصمیم داشت وقتی دختر به سن ازدواج رسید اونو شوهر بده. اما یه روز متوجه شد که سه پسرش هر ستا به دختر علاقه دارن. سلطان باید به طور جدی مسئله رو حل میکرد و مشکل این بود که سلطان باید دوتا پسر کچیکترش رو رازی میکرد که به نفع برادر بزرگتر کنار بیان. اما هر سه تا پسر تو دست خودشون جدی و مصمم بودن به خاطر همین پادشاه هر سه اون اون صدا کرد و گفت پسرای من شما باید هر کدوم نهایت سعی و تلاشتون رو به کار ببرید تا بتونید با برادر من ازدواج کنید. از اونجایی که خودتون خوب میدونید من چیزای عجیب غریب رو خیلی دوست دارم قول میدم که هر کدوم از شما که به کشور دوری بره و یه سوقات خاص و عجیب از اونجا بیاره بردر زادم رو بهش میدم. چون شما باید زیاد جستجو کنید و سوقات های خاصی بیارید من به هر کدوم از شما مبلغی پول میدم. از اونجایی که هر تا پسر همیشه مطیع پدرشون بودن قبول کردن کاری رو که پدرشون میگه انجام بدن تا اونو راضی کنم. سلطان هم همونجوری که قول داده بود به اونا مقداری پول داد و گفت که به سرعت حاضر بشن و روز بعد سفر خودشون رو آغاز کنن هر ستا پسر سوار بر اسب‌های چالاک لباس بازرگان پوشیدن و همراهشون یه سرباز که لباس برده ها رو پوشیده بود حضور داشت اونا از دروازه عبور کردند. اولین روز سفر رو با هم بودن تا اینکه راه به سه قسمت تقسیم شد شب موقع صرف غذا اونا با هم قرار گذاشتن که بعد از گذشت یک سال همه به همون مسافرخونه ای که اون شب اونجا بودن برگردن اونا به هم قول دادن که هر کسی زودتر رسید منتظر دو نفر دیگه بمونه تا هر ستاشون با هم پیش شاه برن صبح روز بعد موقع طولوه آفتاب برادرها همدیگر دیگر تو بغل گرفتن و برای هم آرزوی موفقیت کردن و سوار اسباشون هر کدوم یه راهی رو در پیش گرفتن. شهزاد حسین یعنی برادر بزرگتر به بیسناگار پای یک کشوری به همین نام رسید. شاه اون سرزمین همانجا اقامت داشت. شاهزاده حسین در اون سرزمین شنید که برای خرید و فروش بازرگانای خارجی چهار تا خیابون اصلی وجود داره و در میان این چهار تا خیابون قلعه و قصر محل زندگی شاهه. به خاطر همین روز بعد شاهزاده به اونجا رفت. شاهزاده حسین واقعا از اونجا خوشش اومد. هر کدوم از خیابون به خیابون های تقسیم شده بودن و سراسر سر اونجا رو با سایبونایی اونای پوشونده بودن تا از آفتاب در امون باشه. مغازه همه یه اندازه و یه شکل بودن و صحنه زیبایی تو خیابون به وجود آورده بودن. تعداد مغازه هم که انواع کالاها در اون یافت می انسان رو به تعجب بامی داشت. بهترین کتان از هند. تابلوی نقاشیای نقاشی های بسیار خوشرنگی از درختا حیگونا و گل ها و ابریشم از ایران چین و دیگر کشورها ظروف چینی از ژاپن و چین و پرده های نقشدار از جمله کالاهایی بودند که هر کسی اونها رو میدید میخکوب می شود. ولی وقتی شاهزاده حسین به قسمت بازار زرگرها رسید تعداد تنوع طلا و نقره جواهره و الماس و یاغوت و بریلیان رو دید که به فروش گذاشته بودن مسئله دیگه ای که شاهزاده حسین رو واقعا جذب اونجا کرده بود تعداد بسیار زیاد گل تو خیابون بود ظاهراً هندی ها به گل روز علاقه زیادی دارن و مغازدارا هم گلای خیلی زیادی رو تو گلدون و مغازه نگهداری میکردن به همین خاطر هوای اونجا خیلی معطر بود بعد از اینکه شاهزاده حسین ها رو یکی بعد از دیگری پشت سرگذاشت به سربتمندایی که اونجا دیده بود خیلی فکر میکرد خیلی خسته شده بود همینجوری که راه میرفت از طرف یه بازرگان دعوت شد که به مغازش بره و کمی استراحت کنه اونم قبول کرد اما هنوز مدت زیادی ننشسته بود که مردی رو دید که از جله مغازه میگذشت. اون مرد یه پرده نقشتایی به دستش داشت. هر زله این پرده به شکل مربع بود و به قیمت گرونی به فروش میرسید. شاهزده مرد فروشنده رو صدا کرد چون اون از پرده خیلی خوشش اومده بود نه فقط برای اندازش بلکه به خاطر جنس لطیفی که داشت. شاهزاده به مرد گفت که چطوری چنون پرده غالیچه ای رو به قیمت گرون میفروشه. مرد فروشنده گفت که اگه تازه این قیمت به نظر شما گرون میاد باید بهتون بگم که کسایی هستن که حاضرن اون رو به قیمت بالاتری هم بخرن. شاخصاده حسین جواب داد مطمئنن این غالیچه بسیار گرون قیمته. من تخصص زیادی در زمینه پرده های ای ندارم. مرد فروشنده جواب داد درست میگید آقا. اما باید بهتون بگم که کسی که روی این قالیچه بشینه میتونه با اون پرواز کنه و به هیچ مانعی برخورد نکنه. فکر کنم با دونستن این مطلب شما حتما قالیچه رو میخرید. با شنیدن این حرف شاهزاده با خودش فکر کرد که این قالیچه کمیابترین و بهترین حدیهی که میتونه برا پدرش ببره و اون حتما از این قالیچه خوشش میاد. اون به مرد فروشنده گفت من قیمتی رو که تو میگی میدم ولی چون گفتی که دیگران هم حاضرن این گالیچه رو به قیمت بیشتری بخرن من یه هدیه هم به تو میدم. مرد فروشنده جواب داد آقا من حقیقت رو به شما گفتم. ثابت کردن این حقیقت هم برای من خیلی آسونه و من مطمئنم شما بعد از دریافت حقیقت قیمت بیشتری میپردازیم. حالا من به همراه شما به محل اقامتتون میام. میدونید چطور؟ ما فرش رو پهن میکنیم و روی اون میشینیم. هر وقت شما خواستید فرش ما رو به محل اقامتتون میبره. اگه فرش نتونست ما رو حرکت بده، اون وقت شما میتونی این قالیچه رو نخری و به دنبال کارت بری. درباره باره هدیه هم از تو بسیار ممنون و مچکر خواهم بود. مرد فروشنده رو شنید و قبول کرد که با هم دیگه قالیچه رو انتحان کنن. اونا هر دو روی قالیچه نشستن و به محض اینکه که خواست قالیچه اونها رو به محل اقامت ببره دیدن قالیچه این کار انجام داد و اونا به محل اقامت شاهزاده رسیدن. شاهزاده با دیدن این صحنه تصمیمش جدی شد که قالیچه را بخره. به خاطر همون چهل سکه طلا برای قالیچه و 20 سکه به عنوان انعام به مرد فروشنده داد. به این ترتیب شاهزاده حسین صاحب غالیچه شد و خیلی خوشحال بود. که تو برگشت چنین سوقاتی نایابی داره و حتما موفق به ازدواج با نور نهار میشه. اون فکر میکرد که برادراش نمیتونن همچین سوقاتی پیدا کنن. میدونست که با استفاده از قالیچش در هر لحظه به هر جایی که بخواد میتونه سبر کنه. ولی ترجیح داد که مدت بیشتری تو اون سرزمین بمونه و با مردم اونجا بیشتر آشنا بشه، تا در موقع برگشت تعریف‌های بیشتر رو جالب‌تری برای شاه و درباری‌ها داشته باشه. ولی بعد از مدتی دیگه نتونست دوری شاهزاده خانم رو تحمل کنه. بنابراین با فردی که همراهش اومده بود رو قالیچه نشستم و به قالیچه دستور داد که اون‌ها رو به مسافرخونه‌ای که با برادرش تو اونجا قرار گذاشته بودم ببره. شاهزاد علی پسر دوم که قرار بود به ایران سفر کنه سه روز بعد از جدا شدن از برادرش یک کاروانی رو دیده بود بعد از چهار روز به شیراز رسیده بودن. اون در اونجا خودش رو یه جواهر فروش معرفی کرده بود صبح روز بعد شاهزاد علی که به غیر از وسایل ضروری چیزی با خودش نیورده بود آماده شده بود تا تو شهر گشتی بزنه. اون به محلهی تو شیراز رفت که بزیسیستین سیستین نام داشت. در بین تمام باربرهایی که هر کدوم کالاهایی تو دستشون بود و از این طرف به اون طرف می رفتن علی مردی رو دید که تلسکوپی از جنس آچ تو دستشه. این تلسکوپ یه فوت بلندی داشت. و زخامتش هم اندازه یه انگشت بود. فروشنده قیمت اون رو سی سکه اعلام کرد. اول شاهزاده فکر کرد که مرد فروشنده دیوونه است. به خاطر به مغازه یکی از تاجرها رفت و بر اینکه از اوضا با خبر بشه مرد فروشنده رو نشون داد و گفت میبخشید آقا اون مرد دیوونه است. تاجر جواب داد نمیدونم آقا تا دیروز که سالم بود. اون یکی از تواناترین ترین فروشنده است. من فکر میکنم اگه قیمت تلسکوپ سی که اعلام میکنه حتما اون تلسکوپ کم و بیش همینقدر ارزش داره. به خاطر خیالتون راحت بشه. همین حالا اونو صدا میزنم. شما هم روی این صندلی بشینید و استراحت کنید. ساده علی اونجا نشست و مرد بازرگان به دنبال فروشنده رفت. بازرگان مرد فروشنده رو صدا زد و شاهزاده رو بهش نشون داد و گفت این آقا فکر میکنه شما با این قیمتی که برای تلسکوپ تعین کردین دیوونه شدین. لطفا توضیح بدید که چرا اینقدر گرونه. مرد فروشنده به شاهزاده نزدیک شد و رو به روش استاد و گفت شما اولین کسی نیستید که فکر می من دیوونه شدم. وقتی من ویژگی این تلسکوپ رو به شما بگم متوجه میشید امیدوارم بعد از فهمیدن حقیقت قیمت بیشتریم بپردازید مرد فروشنده لوله تلسکوپ رو به شاهزاده نشون داد و گفت آقا اول ببینید که این لوله در دو طرف با شیشه پوشنده شده و توجه کنید که با نگاه کردن از یه طرف اون میتونید هر چیزی رو که آرزو دارید ببینید شاهزاده گفت من آمادهم که به خاطر حرف بدی که به شما زدم هر کاری بگید انجام بدم. ولی لوله ای تلسکوپ گرفت و از دو طرف رو نگاه کرد و گفت به من بگو از کدوم طرف باید نگاه کنم تا اون چیزهایی رو که دوست دارم ببینم. مرد فروشنده بهش توضیح داد و شاهزاده تو همون لحظه آرزو کرد که پدرش سلطان رو ببینه. پدر سالم و سرحال رو تخت نشسته بود. بعد از اون چون غیر از پدرش عزیزترین کس برای اون شاهزاده نور نهار بود آرزو کرد که اونو هم ببینه. پس نور نهار رو هم دید که بین دخترهای دیگه نشسته و مشغول صحبته. شاهزاد علی با دیدن این تلسکوپ عجیب تصمیمش جدی شد که اونو خریداری کنه. چرا که فکر میکرد این کالای عجیبی در هیچ جای جهان پیدا نمیشه بنابراین مرد فروشنده رو به محل اقامتش برد و پول تلسکوپ رو بهش داد و صاحب اون شد راه علی از این که تونسته سوقاتی به این زیبایی بگیره خیلی خوشحال بود و مطمئن بود که هیچ کدوم از برادرش نتونستن چنین کالای عجیبی پیدا کنن به خاطر همون حتما دختر با اون ازدواج میکنه. اون مدتی دیگه تو شهر شیراز موند و به محض اینکه کاروان آماده برگشت شد اونم با مسافرای دیگه راهی شدم و بعد از چند روز سفر به محل قرارشون با برادرها رسید. در اونجا شاهزاده حسین رو دید و هر دو با هم منتظر شاهزاده احمد شدن. شاهزاده احمد که راه سمرغند رو در پیش گرفته بود مثل دو تا برادر دیگرش به بازار رفت اون فروشنده ای رو دید که یه سیب مصنوعی رو تو دستش گرفته و قیمت اون رو سی و سکه اعلام کرده راه زاده به فروشنده گفت بذار این سیب رو ببینم بگو ببینم مگه این سیب چه خاصیتی داره که قیمت این بالایی براش تعین کردی؟ مرد فروشنده گفت اگه شما فقط به یه سطح بیرونی این سیب نگاه کنین به نظرتون بیارزش میاد اما اگه به ویژگی ها و خاصیتاش توجه کنین حتما قیمت زیادی براش میپردازین چون به اندازه یه گنج میارزه خلاصه اینکه این سیب تمام دردهای بدون علاج رو درمان میکنه و انسان رو کاملا سالم میکنه فقط کافیه که فرد بیمار این سیب رو بو کنه. شخص گفت من حرفای تو رو باور میکنم. این سیب باقی ارزشمنده ولی باید یک بار این رو به من ثابت کنی. فروشنده گفت همه شهر سمرغن این سیب رو میشناسن. ولی راه دوری نمیریم. بهتر از همین بازرگان بپرسید. اونا برای شما تعریف میکنن که از این سیب چه چیزهایی دیدن. تازه باید بهتون بگم که این سیب حاصل پژوهش‌های فلاسفه و کیمیاگرای این شهره که اکسیر زندگی رو از مواد معدنی ساختن و تا به حال چند نفر رو که تو آستانه مرگ بودن نجات دادن ولی دانشمندی که صاحب این سیب بوده به دلیل فقر شدیدش مجبور به فروش اون شده همین طوری که فروشنده ویژگی های سیب رو داشت شهر میداد افراد زیادی درم جمع شدن و حرفهای اون رو تایید کردند. یکی از اونا گفت دوستی داشته که به سختی بیمار بوده و همه ازش نامید شده بودن این سیب اونو نجات داده راهاهستاده احمد با شنیدن این حرفها سیب رو خرید. مرد فروشنده گفت با این حال اگه میخواد میتونیم که سیب رو امتحان کنیم تا شما مطمئن بشید خلاصه آزمایش موفقیت آمیز انجام شد و شاهزاده چهل سکه برای سیب پرداخت و صاحب سیب شد. بعد به مسافرخونه، خونه جایی که برادرش منتظرش بودند رسید. وقتی اونا همدیگر رو دیدن پدایایی رو که آورده بودند به همدیگه نشون دادند. اونا با دوربین برادرشون دیدن که شاهزاده خانم تو بستر مرگه، بعد از مشاهده این صحنه، روقالیچه پرنده نشستن و آرزو کردند که به بالین نور و نهار حاضر بشن و یه لحظه بعد خودشون رو اونجا دیدن. به محض اینکه به اتاق نور و نهار رسیدن، هر ستا شاهزاده از روی قالیچه بلند شدن و به کنار دختر رفتن. شاهزاده احمد سیب رو جلوی بیرین نور و نهار گرفت. بعد از چند لحظه نور و نهار چشاشو باز کرد و سرش رو حرکت داد و به افرادی که اطرافش ایستاده بودن نگاه کرد. بعد بلند شد نشست و خواست که لباسهاش رو براش بیارن. انگاری که از یه خواب معمولی بیدار شده. خدمتکارش که از خوشحالی نمیدونست باید چی کار کنه با شادی تموم از شاهصاده ها به احمد تشکر کرد. سلطان هم از بهبودی شاهزاده خیلی خوشحال شد چرا که اون رو مثل دختر خودش دوست داشت. اون که از برگشتن پسرش هم بیادندازه حیجان زده شده بود یه مهمونی براه انداخت. آخر مهمونی شاهزاده ها هر کدوم سقاطیه خودشون رو نشون دادن. شاهزاده حسین قالیچهش رو که باعث شده بود اونها رو به بالین دختر برسونه نشون داد. شاهزاده علی تلسکوپش رو و شاهزاده احمد هم سیب مصنوعی رو وقتی هر کدوم از اونها هدیه‌هاشون رو به شاه تقدیم کردن ازش خواستن که نورون نهار رو به کس دیگه‌ای نده. سلطان حرفای اونا رو شنید. مدتی ساکت شد. انگار که داشت فکر میکرد که چه جوابی به پسرهاش بده. ولی سکوت سکوتش شکست و گفت: پسرم من میخوام کاری انجام بدم که ادالت رعایت بشه. پسرم احمد درسته که نور و نهار سلامتیش رو مدیون سیب توه ولی اگه شما با دوربین علی نمیدیدید که اون مریضه و اگه فرش حسین نبود که با اون سرعت به اینجا چی میشد همه شما به یه اندازه تو برگشتن سلامتی اون نقش داشتین. دو تا برادر بزرگتر باید بدونن که چنان سی به برادر کچکتر نبود، وسایل اونا هم بیفایده بود. در واقع، وسیله هر کدوم از شما بدون وسیله های دو نفر دیگه بیفایده می شود. به خاطر همون من نمیتونم برادر زادم رو به هیچ کدوم از شما بدم. تنها سمره سفر شما اینه که همگی به طور مساوی در معالجه نور و نهار سهم داشتین. بعد سلطان گفت. به دلیل این مسائل من باید یه راه دیگه یا انتخاب کنم. شما زودتر برید و تیر کمونی برای خودتون فراهم کنید. بعد هم به یه مزرعه برید من نور و نهار رو به کسی میدم که بتونه تیر رو به فاصله دورتری پرتاب کنه. پسرا جوابی برای حرف پدرشون نداشتن. بنابراین تیر کمون رو آماده کردن و، هر با افسری به دشت رفتن. افراد زیادی هم جمع شده بودند تا نتیجه کار رو ببینند. سلطان زیاد اونها رو مشغول نکرد و سری به اونجا رفت. شاهزاده حسین که از همه بزرگتر بود به عنوان اولین نفر تیر رو پرتاب کرد. علی بعد از اون و احمد هم به نوبت همین کار رو کردند. اما هیچ کسی نتونست بفهمه تیرها کجا افتادن. هرچی جستجو کردن تیرها پیدا نشد و اونا نفهمیدند که چه کسی تیر رو به فاصله دورتری پرتاب کرده. ولی سلطان بعد از کمی حساب و کتاب گفت که شهزاد علی تیر رو به فاصله دورتری انداخته و دستور داد که نور و نهار با شاهزاده علی ازدواج کنه. و خیلی زود مراسم ازدواج اون دو برپا شد. شاهزاده حسین تو مراسم شرکت نکرد. چون در واقع از این کار اصلا خوشش نیومد. شاهزاده احمد هم به جشن عروسی برادرش با نور و نهار نرفت. اون نمیدونست که پدرش چجوری تشخیص داد که تیر علی به فاصله دورتری رفته. با این فکرها به قصد رفت. شهزاد علی و حسین هم اونجا بودند و گاهی با خودشون فکر میکردن که انتقاد بیفایده است. به خاطر هم به جایی رفت که تیراندازی اونجا انجام شده. در مسیر پرتاب تیرها رفت و رفت و رفت اونقدر رفت تا حدود چهار فرسخ از قصر دور شد و به سرزمین خشک و بی آب و گیاهی رسید. وقتی شاستاد احمد کاملا به سنگهای اون زمین بایر نزدیک شد، تیری رو روی زمین دید. با به بسیار متوجه شد که اون تیر تیر خودشه. با خودش گفت نه من و نه هیچ کس دیگه نمیتونه تیر رو به چنین ای پرتاب کنه. اون خوب به تیر نگاه کرد. تیر فقط کمی پهن شده بود. ولی تو زمین فرو نرفته بود. فکر کرد که تیر حتماً به سنگا خورده و چون در اونها فرو نرفته به زمین افتاده. با خودش فکر کرد که حتماً کاسه زیره نیم کاسه است. باید از این قضیه سر در بیارم. شاید بررسی این موضوع به نفع من بشه. صحنه های اون منطقه پر از خون بودن. بعضی از حفره ها تقریبا به اندازه یک غ کوچیک بودن، شاهزاده وارد یکی از غارها شد و به یه در آهنی برخورد، در آهنی به ظاهر قفل نداشت. شاهزاده با احتیاط در و باز کرد و در حالی که تیر کمون تو دستش بود وارد شد. اولیش فکر می‌کرد که به یه جای تاریک و تنگ وارد شده، ولی وقتی کمی جلو رفت، نور شدیدی به چشاش خورد و وارد یه تالار تقریبا بزرگی شد. تو اونجا یه قصری رو دید ولی وقت نداشت که کاملا به دیدنم بپردازه. تو همون لحظه یه زن جادوگر همراه چند زن دیگه که لباسای زیبایی به تن داشتن ظاهر شدند. همین که چشم احمد به اون خانم افتاد جلو رفت تا احترام بذاره. اما اون خانون به اون اجازه نداد و گفت بیا جلوتر تر شاه ساده احمد خوش اومدی برای شاه ساده احمد که پسر شاه مملکت بود تعجبی نداشت که اون زن اسمش رو میدونست. اون جلو رفت و گفت من از شما متکرم که به من خوش آمد میگید در حالی که بدون اجازه وارد ملک شما شدم. اما میشه بپرسم شما من از کجا میشناسین؟ آیا قبلا شما رو دیدم یا نه؟ اون زن گفت بیایید به تالار بریم اونجا همه چیز رو برای شما توضیح میدم. بعد شهازده احمد و اون زن به تالار رفتن. زن روی یه صندلی و شهازده کنارش شد نشست. زن گفت گفتی تعجب کردی که من تو رو میشناسم؟ اما اگه من خودم رو به تو معرفی کنم دیگه از هیچ چیز تحجب نمی کنی. من دختری یکی از قدرت من در و مهمترین پریا هستم و اسمم پریبانوه فکر کنم تو میخوای مکاری کنم که به نور نهار برسی موقعی که تو تیر خودت رو پرتاب کردی من دیدم تیر تو جلوتر از تیر شاهزاده حسین بود اما من اون رو از روی هوا گرفتم و اینجا در سنگا انداختم که خودت اون رو پیدا کردی وقتی پریبانو این حرف رو گفت با چونه ای لرزون برگشت و به شاهزاده احمد نگاه کرد. شاهزاده اونقدر گیت شده بود که انگاری چیزی نمیشنید و فکر میکرد که نور و نهار هرگز از آن اون نخواهد شد چون به نظر نمیرسید که این زن بخواد بهش کمک کنه. اون به تیر خودش فکر میکرد. یهو یه یهو زد خانم میتونم از شما خواهش کنم که برای همیشه منو برده خود کنید. اگه این کار رو بکنید من خوشبخت مرد دنیا میشم. منو ببخشید که جسورانه این درخواست رو از شما میکنم ولی خواهش میکنم منو در درباره خودتون قبول کنید. جا دوگر جواب داد شاست داده. آیا تو ایمان خود رو نزد من گرو میذاری تا من این کار رو برد بکنم؟ شاف داده با خوشحالی گفت بله با کمال میل من همه فکر و قلبم رو به شما میدم جادوگر گفت پس تو همسر من میشی خب فکر کنم امروز از صبح چیزی نخوردی دستور میدم برات غذا بیارم و شب جشن عروسی به راه میندازیم بعد دستور میدم جای خوب و راحتی برات آماده کنن چند نفر از ندیمه های جادوگر از تالار خارج شدند و با ظرفهایی پر از غذا و نوشیدنی برگشتن وقتی شاهزاده به اندازه کافی غذا خورد پریبانون اونو به اتاقش برد شاهزاده در اون اتاق مقدار زیادی علماس، یاغوت، مروارید و انواع سنکای قیمتی دید مقدار این وسایل قیمتی در اونجا اونقدر زیاد بود که شهستاده احمد با خودش فکر کرد که در هیچ جای دنیا این همه جواهرات کنار هم جمع نشدن. پریبانو گفت شاهزاده اگه شما از قصر من خوشتون اومده پس اگه قصر پادشاه ما رو ببینید چی میگین؟ قصر اون بهترین قصره. خب دیگه شب شده بهتره بریم شام بخوریم. جا اتاق دیگه ای به شاهزاده نشون داد و در اونجا لباسهاش رو عوض کرد. تزدینات ویژه و زیبای اون تالار تحسین شاهزاده را برانگیخت. تالار بعدی مخصوص شام بود. غذاهای مختلفی تو ظرف‌های طلایی چیده شده بود. چند تا زن هم با لباسهای مجلل و صداهای دلنشین دور میز می گشتن. وقتی شاهزاده نشست، پریبانو سفارش کرد که بهترین غذاها رو به مهمونش بدن. شاهزاده احمد با اینکه خودش فرزند شاه بود، تا اون موقع چنان غذاهای خوش نخورده بود. جشن عروسی فردا و تا چند روز بعد هم طول کشید. بعد از گذشت شیش ماه شاهزاده احمد که پدرش رو خیلی دوست داشت دلش براش تنگ شد و میخواست بدونه که حال پدرش چجوریه. به خاطر همین خواست مسئله رو به پریبانو بگه و ازش اجازه مرخصی بگیره. زن شاهزاده اگه میخوایی بری برو. ولی موقع رفتن حتما منو باخبر کن تا بگم چه کارهایی باید بکنی اولا به نظر من بهتره به پدرت درباره ازدواجمون و اینکه من چه کسی هستم و کجا زندگی میکنم چیزی نگیر فقط بهش بگو که خوشوخت هستی و از سرنوشت خودت اونو باخبر کن اون پیستو مرد سوار را همراه شاهزاده فرستاد و وسایل و تجهیزات کافی هم در اختیارشون گذاشت. وقتی همه چیز آماده شد، شاهزاده با همسرش خداحافظی کرد و گفت که خیلی زود پیشش برمیگرده. بعد با اسب چابک زیبای خودش به راه افتاد تا راهی قصر پدرش بشه. شاهزاده احمد خیلی زود به اونجا رسید. مردم از دیدن او خیلی خوشحال شدند و با شادی ازش استقبال کردند و اون رو به قصر شاه بردن سلطان با خوشحالی پسرش رو در آغوش گرفت و پرسید که چرا غیبت داشته شاهزاده به پدرش گفت که به دلیل رأی اون به نفع شاهزاده علی اونجا رو ترک کرده تا مبادا از شدت عصبانیت حرکت نامناسبی کنه شخص ده بدون اینکه اسمی از جادوگر ببره قصه ای تعریف کرد و گفت تنها چیزی که من از شما میخوام اینه که اجازه بدید هر چند وقت یه بار بیام و شما رو ببینم و از حالتون با خبر بشم سلطان جواب داد فرزندم من نمیتونم این خواهش شما رو رد کنم اما بیشتر دوست دارم که پیش من بمونی لاقل به من بگو اگه کاری با تو داشتم کجا باید دنبالت بیام شخص احمد جواب داد جنابش چیزی که شما از من میخواید راضیه که نمیتونم دربارش بهتون بگم. اجازه بدید ساکت باشم و چیزی نگم. تا برامون مشکلی پیش نیاد. سلطان دیگه به پسرش حرفی نزد. فقط گفت که دیگه بهت اصرار نمی کنم. هر جوری که میخوای رفتار کن. اما فقط اینو میگم که بزرگترین لطفی که به من میکنی اینه که هر چند وقت بار به من سر بزنی. من از زیدن خیلی خوشحال میشم و نمیخوام آسیبی بهت برسه. شافزاده احمد چند روز زیر رو پیش پدرش موند و بعد به قار پیش پریبانو برگشت. پریبانو انتظار نداشت که به اون زودی برگرده. یک ماه از برگشتن شاهزاده احمد از قصر پدرش گذشته بود. در این مدت با اینکه پریبانو به اون اجازه داده بود که هر چند وقت یه بار به دیدن پدرش بره اما شاهزاده دیگه هرگز نخواست که به اونجا بره و هیچ حرفی هم از سلطان نمیزد. اصلا انگار چنین آدمی در دنیا وجود نداشت. پری بانو که متوجه این تغییر حالت شاهزاده شده بود از اینکه که میدید اون برخلاف گذشته حرفی از پدرش نمیزنه فرصتی پیدا کرد و بهش گفت شاهزاده بگو ببینم پدرت رو فراموش کردی؟ یادم میاد که تو خیلی از اون حرف میزدی و میخواستی گاهی به دیدنش بری. به نظر من بهتر همونطور که بهش قول دادی به دیدنش بری. بنابراین صبح روز بعد شاهزاده خودش رو آماده کرد و با اسبی زیباتر و بهتر از دفعه قبل و همراه های بیشتر به طرف قصر پدرش به راه افتاد. در طول چند ماه آینده این عمل چند بار تکرار شد و شاهزاده هر بار مجهزتر و مجللتر از دفعه قبل به قصر پدرش می‌رفت. بعد از مدتی اطرافیان سلطان اون رو به ضد پدرش تحریک کردند و بهش گفتن که وقتی شاهزاده اینقدر وضعش خوب شده و زندگی باشکوهی داره ممکنه علیهش شورش کنه. و یا مردم رو با خودش همراه کنه سلطان که اصلا فکرش رو نمیکرد شاهزاد احمد بهش حمله کنه به اونا گفت شما اشتباه میکنید پسرم منو دوست داره منم اونو دوست دارم و هرگز این اتفاق نمیفته اما چاپلوسا اونقدر به حرفای خودشون ادامه دادن که سلطان گفت من حرفای شما رو باور نمیکنم مگه اینکه به من ثابت کنید و پسر من هرگز به من خیانت نمیکنه. بعد از رفتن تاپلوسا سلطان با خودش فکر کرد نکنه که اونا درست میگن و تاج و تخت من در خطر باشه. یه زن جادوگر رو خبر کرد و بهش گفت زود دنبال پسرم برو ببین اون کجا میره و چه کار میکنه. بعد بیا و به من بگو. جادوگر قصر رو ترک کرد و چون جای شاهزاد رو میدونست به اونجا رفت. سنگی پنهون شد تا ببینه اوضاعت چه قراره. صبح روز بعد موقع طلو آفتاب شاه احمد به راه افتاد، رادوگرم دنبالش را افتاد تا ببینه اون کجا میره؟ اما تو یه لحظه اونو گم کرد و حد زد که دو راه بیشتر نداره، یا شاهزاده با یه کاروان همراه شده و یا به محل اقامت پریار رفته. جادوگر یکی از این راه ها رو در پیش گرفت و رفت و به انتهای اون رسید. در اونجا دری بود. جادوگر در زد اما کسی در باز نکرد. ظاهرا اون در فقط برای انسان ها باز میشد، اونم انسان هایی که پریبانو بخواد. جادوگر که دید سعی و تلاشش بیوایده است، تصمیم گرفت پیش سلطان برگرده و گزارش کارش رو تا همینجا بده. سلطان از خبرهای جادوگر خیلی خوشحال شد و بهش گفت سعی کنیم پریبانو رو راضی کنی. اگه دیدی لازمه بهش خول زیادی علماس بده. شاهزاده که از پریبانو قول گرفته بود ماهی یک بار به دیدن سلطان بره هر ماه درست سر وقت این کار رو انجام میداد و جادوگر که زمان این کار رو میدونست، درست پشت سر شاهزاده به راه می افتاد. یکی از روزا وقتی شاهزاده احمد داشت به طرف در اسرارآمیز میرفت، به طور اتفاقی جادوگر رو دید که پشت سنگی نشسته و سرش رو به زانو گرفته شاهزاده خیال کرد که اون دردی چیزی داره دلش براش سوخت و با همراهاش ایستادن از اون پرسید که می تونه کاری براش انجام بده جادوگر که کار خودش رو خوب بلد بود گفت که خیلی بیماره و به طرف شهر میرفته اما در بین راه اونقدر حالش بد شده که همونجا افتاده و حالا هیچ کسی رو نداره که کمکش کنه. اون این حرفا رو با صدای لرزون به زبون می آورد. احمد گفت ای زن من حاضرم بهت کمک کنم حالا به یکی از همراه هام میدم میدم که تو رو به هر جایی که میخوای ببره. رادوگر که میخواست هر جوری شده همراه خود شاهزاده بره بازم خودش رو به بیماری زد و جوری وانمود کرد که اصلا نمیتونه از جاش بلند بشه. تو همین موقع دو نفر از همراه های شاهزاده اومدن و جادوگر رو بلند کردن و روی اسب گذاشتن. شاهزاده هم اونها رو جلوی در آهنی بود. در آهنی برای شاهزاده باز شد. پری بانو پیش اونا اومد ولی نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. به خاطر همین شاهزاده وقتو تلف نکرد و گفت بانو، حالا این زن خیلی بده. من اونو بین راه پیدا کردم و بهش قول دادم که کمکش کنم. حالا پیش شما آمدیم تا هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین شاید حالش بهتر شه. پری بانو نگاهی به اون زن انداخت. بعد دو نفر از خدمتکاراش رو دستور داد که اونو به اتاقی ببرن تا استراحت کنه. وقتی اون دو زن جادوگر رو به اتاق دیگه بردن، پریوانو پیش شاهزاده رفت و گفت شاهزاده این زن بیمار نیست، فقط جوری وانمود کرده که مریضه. اون دردسر بزرگی برای ما درست میکنه. احتمالاً به دنبال شما اومده. حالا تو به دنبال سفرت برو. من مراقب اون هستم. حرف های با حریبانو شاهزاده رو نترسون. اون گفت بانوی من. تا جایی که یادم میاد، من به کسی بدی نکردم که به دنبال من باشه. حالا اگه تو فکر میکنی که اینجوره ما با خوبی کردم به اون خطرات رو از خودمون دور میکنیم. بعد را افتاد تا به قصر پدرش بره. تو همین مدت خدمتکارا جادوگر رو به یه اتاقی بردن اونو اول جادوگر رو روی یه نیمکت نشوندن و بعد تختی براش آماده کردن که روی رو تختی اون رو ابریشمی می بود بعد اون جادوگر رو روی تخت خوابوندن و یکی از خدمتکارا رفت و با ظرف چینی پر از نوشیدنی برگشت مستخدم دیگه ای هم کمک کرد تا جادوگر بشینه و گفت این نوشیدنی رو بخور آب چشمه شیر و همینو تبر و رو بهبودی می بخشه. اثر اون رو در کمتر از یک ساعت می بینی. جادوگر اول قبول نمی کرد ولی به اصرار زیاد قبول کرد و ظرف رو گرفت و تا انتها سر کشید. وقتی دوباره دراز کشید خدمتکارا روشو رو پوشوندن و همون مستخدمی که نوشیدنی رو آورده بود گفت آروم باش و اگه می تونی بخواب. وقتی بعد یه ساعت بیدار بشی، حالت خوب میشه. یه ساعت بعد اونا دوباره برگشتم و دیدن که جادوگر بیدار شده و آماده روی نیمکت نشسته. اون گفت عجب نوشیدنی خوبی بود. خیلی زود حالم خوب کرد. حالا میتونم به سفرم ادامه بدم. اون دو خدمتکار که مثل سرورشون جادوگر بودن گفتن که از دیدن اون زن خیلی خوشحال شدن. و اون رو به بیرون از قصر راهنمایی نمایی کردن پریبانو تو یکی از تالارا نشسته بود و اطرافش پر از تلا نقره، الماس و یاغود بود و پریه زیادی هم در کنارش بودن اون با دیدن جادوگر گفت خانم از اینکه میبینم حالتون خوب شده و میتونید به سفرتون ادامه بدید خیلی خوشحالم شاید دلتون بخواد قصر رو کامل ببینید و بعد به خدمتکاراش دستور داد که قصر رو به خانون نشون بدن. خلاص جادوگر پیش سلطان برگشت و بهش گفت که پسرش با کسی ازدواج کرده که از همشون ثروتمندتره و ممکنه که با ثروتش تاج و تخت سلطان رو بگیره. از اونجایی که سلطان به پسرش اطمینان داشت، گفت من از اطلاعاتی که برام آوردی متشکرم. ما درباره این چیزی که میگی مطمئن نیستم. حالا دیگه چاپلوس معتقد بودن بهتر شاهزاده کشته بشه. اما جادوگر دوگر پیشنهاد دیگه ای داشت. اون گفت شما با کمک اون پری از شاهزاده بخواد که کارهای عجیبی براتون انجام بده. بنابراین اون پری از دست شاهزاده خسته میشو اونو پیش شما برمیگردونه. مثلا هر بار که شاهزاده به دیدن شما میاد شما باید چیزی ازش بخواین. مثلا چادری با خودش بیاره که اندازه دسته یک انسان باشه ولی بتونه تمام ارتش شما رو پوشش بده. وقتی های جادوگر تموم شد سلطان از اطرافیانش پرسید که آیا اونا پیشنهادی ندارن؟ ولی وقتی دید که همه ساکت شدن تصمیم گرفت پیشنهاد جادوگر رو که در نظر همه منطقی و قابل اجرا می اومد عملی کنه روز بعد سلطان کاری رو که جادوگر گفته بود انجام داد و از پسرش تقاضای چادر کرد شاهزاده احمد که هرگز فکر نمی‌کرد پدرش این تقاضا رو ازش کنه با وجود اینکه به نظرش اومد چنین کاری مشکله ولی قبول کرد چون شاهزاده احمد درست نمی دونست که پریا و جادوگرا چه قدرتی دارم. و نمیدونست که آیا پریبانون میتونه چادری رو که پدرش خواسته آماده کنه یا نه. بلاخره شاهزاده گفت اگه این چیزی که شما خواستید خیلی عجیبه ولی من از همسرم میخوام که در صورت امکان اون رو برای شما آماده کنه. اما قول نمیدم که بتونه. بنابراین اگه من دیگه به دیدن شما نیمدم بدونید که اون نتونسته این کار رو انجام بده. ولی یادتون باشه شما کاری کردید که دیدارمون کمتر بشه. سلطان جواب داد پسرم خیلی متاسفم که خواهشی ازت کردم که ممکنه باعث بشه که ما دیگه هم دیگر رو نبینیم. ولی به هر حال تو به عنوان یک شوهر باید بدونی که همسرت چقدر قدرت داده و اگه واقعا تو رو دوست داشته باشه با استفاده از قدرت فوقلادش هر مشکلی رو برطرف کنه. به هر حال امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. شاهزاده رفت ولی از عواقب کار خیلی نگران بود. وقتی موضوع رو به پری بانو گفت، اون خیلی به شاهزاده اصرار کرد که توضیح بیشتری بده. تا اینکه بالاخره شاهزاده گفت بانو، تو باید بدونی که من بهت علاقه دارم و تا به حال چیزی ازت نخواستم. این بار پدرم خواسته که تو چادری براش فراهم کنی. که هم تمام ارتش و دربار رو در خودش جا بده و هم به اندازه دستی انسان باشه، خلاصه یادت باشه که پدرم این خواسته رو از تو داشته. پری لبغند زد و گفت من متاسفم که چنین موضوع ساده ای اونقدر تو رو ناراحت کرده و بعد خزانه دارش رو احسار کرد و بهش گفت بزرگترین چادری رو که در خزانه داریم برام بیار خزانه دار فورا با چادری برگشت که در کف دست میشد شد. پریبانو چادر رو گرفت و به شاخصداده احمد داد. اون شنید که پریبانو گفت بزرگترین چادر آورده بشه ولی خیلی تعجب کرد. پریبانو از اینکه میدید اون تعجب کرده خندش گرفت و گفت شاخصداده فکر میکنی من با تو شوخ کردم حالا بهت نشون میدم. بعد به خزانه گفت که چادر رو از شاهزاده بگیر و اون رو در جای نسب کن تا اون ببینه که گنجایش کافی داره یا نه؟ خزانه دار فوراً از قصرش بیرون رفت و مقدار زیادی دور شد. وقتی چادر کاملاً پهن شد، تمام فضا رو پر کرد. شاهزاده دید که اون چادر واقعاً گنجایش چند برابر ارتش پدرش رو هم داره. به پریبانو گفت بانوی من، عذر میخوام که به توانایی شما شک کردم. حالا دیگه مطمئن هستم که برای شما هیچ چیز غیر ممکن وجود نداره. پری گفت دیدی که این چادر از اون که پدرت خواسته بودم بزرگتره. چیز دیگه ایم که باید بدونی اینه که این چادر به اندازه ارتش میتونه کوچیک و بزرگ بشه. خزانه دار چادر رو جمع کرد و اون رو به شاهزاده داد. شاهزاده هم بدون اینکه منتظر رسیدن فردا بشه همون موقع سوار اصفش شد و به طرف قصر پدرش رفت. سلطان که فکرش رو هم نمی کرد چنین چیزی تو جهان وجود داشته باشه با تعجب چادر رو از پسرش گرفت. باورش نمیشد که اون چادر اونقدر کوچیک باشه. بعد دستور داد که چادر رو پهن کنن. یهو متوجه شد که اون چادر گنجایش حتی دو برابر ارتشش رو هم داره. ولی سلطان هنوز راضی نشده بود. اون گفت پسرم، تو میدونی که من چقدر به چنین چادری احتیاج داشتم. ولی حالا باید کار دیگه یم بکنی تا پدرت شاد بشه. شنیدم که همسر چشمه به نام چشمه شیرها داره که آب اون چشمه همه نوع تب رو فوری برطرف میکنه میدونم که سلامتی من برای تو مهمه بعد از همسرت بخوای که یه بطری از اون آب رو به من بده تا در موقع نیاز ازش استفاده کنم این کار رو هم برای من انجام بده و حق فرزندیتو کامل کن راست داده برگشت و پیغام پدرش رو به پری داد. پری جواب داد، این خواسته خطرناکیه. همونجوری که می دونی در ورودی چشمه چهار تا شیر به نوبت از اون چشمه مراقبت می و اجازه نمیدن که کسی داخل بشه. اما عیبی نداره، تو خودت رو ناراحت نکن. من یک کاری می کنم که بتونی بی خطر وارد قار بشید. علی سخت مشغول کار شد یکی از کلافهای نخ رو که کنار دستش بود به شاهزاده داد و گفت فعلا این کلاف نخ رو بگیر طرز استفادهش رو بهت میگم در مرحله دوم تو باید دو تا اسب داشته باشی یکی رو سوارش بشی و یکی دیگه هم تو رو راهنمایی کنه اسب دوم باید تکیه های گوشت گوسفند رو هم بیاره گوسپندا باید امروز کشته بشن در مرحله سوم باید بطری رو که بهت میدم با خودت ببری و آب چشمه رو در اون بریزی و بیاری فردا صبح زود راه بیفت و وقتی که از دروازه آهنی گذشتی کلاف نخ رو پشت سرت بنداز این کلاف همینطوری پشت سرت باز میشه تا به دروازه های قصری برسی که چشم اونجا وجود داره زمانی که نخت تموم شد تو به دروازه چشمه میرسی دروازه باز میشو تو چهار شیر رو اونجا میبینی دو تا از شیرها بیدارن و با دیدن تو نهره میکشن و دوتا شیر دیگر رو هم بیدار میکنن اما تو نباید بترسی برای هر کدوم از اونا یه تیکه گوشت بنداز و بعد با اسب به طرف چشمه برو به سرعت بطری رو از آب پر کنه برگرد شیرا اونقدر سرشون به گوشتا گرم میشه که کاری به تو نخواهند داشت صبح روز بعد شاهزاده به راه افتاد و کارهایی رو که پریبانو گفته بود انجام داد وقتی شاهزاده به دروازه چشمه رسید گوشتا رو بین شیرها تقسیم کرد و از بین اونها گذشت و به چشمه رسید و سزارو پر کرد و برگشت. وقتی کمی از دروازه چشم دور شده بود، برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد و دید که دوتا از شیرا دارن دنبالش میان. شاهزاده خودش رو آماده دفاع کرد، اما متوجه شد که یکی از شیرا داره برمیگرده. اون با حرکتهای سرش و دومش به شاهزاده نشون داد که نمیخواد بهش آسیبی برسونه. خلاصه شیرا که نمیخواستند آزاری به شاهزاده برسونند اونو تا نزدیک قصر سلطان همراهی کردند اما در اونجا اونو ترک کردند وقتی شاهزاده از اسب پیاده شد تا پیش پدرش بره افسرای زیادی اونو همراهی کردند سلطان توسط اطرافیاش دوره شده بود شاهزاده به طرف سلطان رفت بطری آب چشمه رو در کنار اون گذاشت دستش رو بوسید و گفت آبی رو که خواسته بودید براتون آوردم میتونید اون رو در گنجینه خودتون نگهدارید و در زمان لازم ازش استفاده کنید وقتی حرفهای شاهزاده تموم شد سلطان اونو سمت راست خودش نشوند و گفت پسرم من برای این هدیه‌ای که برام آوردی ازت متشکرم مخصوصا بر اینکه خودت رو به خاطر من به خطر بزرگی انداختی چون شنیده بودم که چشم شیرها خیلی خطرناکه و بعد سلطان ادامه داد که ولی لطف کن به من بگو که چطوری به اونجا رفتی که شیرها بهت حمله نکردند. شاهزاده احمد گفت من کار مهمی نکردم پدر فقط لطف همسرم بود که من راهنمایی کرد بعدم به سلطان گفت که تجری به طرف چشمه رفته. شاه با شنیدن این حرفا به پسرش حسودی کرد. به خاطرمون به تالار ای رفت و جادوگر را احضار کرد. جادوگر پیش سلطان اومد. اون از برگشتن شاهزاد احمد خیلی تعجب کرده بود. جادوگر چیزایی به سلطان گفت و رفت. صبح روز بعد سلطان در جمع درباریاش به پسرش گفت که پسرم من چیز دیگه ای ازت نمیخوام. من از تو همسرت خواهش دیگه هم ندارم. اما میخوام که اگه دوست داری مردی رو به طرف من بفرستی که قدش اندازه یه پا باشه و ریش بلندی داشته باشه. وزن آهنی به وزن سی کیلوگرم روی شونه هاش باشه و از اون به عنوان چماغ استفاده کنه. شانس احمد که فکر نمی چنین آدمی وجود داشته باشه از پدرش عذر کرد. ولی پدرش رو خواستش اصرار کرد و گفت که برای پریبانو هیچ چیزی غیر ممکن نیست. روز بعد شاهزاده پیش از عزیزش برگشت و خواسته پدرش رو بهش گفت و اضافه کرد که من فکر نمی کنم همچنین آدمی تو جهان وجود داشته باشه فکر میکنم پدرم میخواد منو عذیت کنه. آخه اون چجوری چنین چیزی از من میخواد؟ تازه اگرم همچنان آدمی وجود داشته باشه من چجوری باید اونو بگیرم؟ تو بگو من چیکار کنم؟ پری جواب داد نترس. تو که خطر بزرگه آوردن آب از چشمه رو به جونت خریدی. دیگه نباید از پیدا کردن همچین کسی به ترسی. تازه مشخصاتی که تو میدی؟ دقیقاً مربوط به برادر منه. فقط تنها مشکلی که وجود داره اینه که اون از ما خیلی دوره. اگه چه ما هر دو از یه پدر مادر هستیم اما اون خوی ظالمانه و وحشیش باعث شده که اینقدر از ما دور باشه. بعدم اون معمولاً به حرف کسی گوش نمیده. اون درست همون مشخصاتی رو داره که پدرتو گفته. من کسی رو دنبالش میفرستم و تو میبینی که اون همه ای ویژگه رو داره اما خودت رو آماده کن که وقتی اونو دیدی نترسی راستاد احمد گفت آه بانو مگه اون بردارتون نیست من هرگز از بردارتون نمیترسم بلکه اون رو خیلی دوستم خواهم داشت پری دستور داد که با وسایل مخصوصش آتیش بزرگی درست کردن چند لحظه بعد دود خیلی قلیزی همه قصر رو دربر گرفت کمی بعد پریبانو به همسرش گفت ببین برادرم از راه دور میاد شاهزاده نگاه کرد و دید که درسته مردی با همون مشغل به قصر نزدیک میشه اون خیلی کوچیک بود و سری گردی داشت اگه شاهزاده احمد نمیدونست که اون برادر پریبانوه هرگز نمیتونست بهش نگاه کنه ولی چون میدونست که اون برادر همسرشه سعی کرد آروم بمونه. وقتی مرد کتوله به اونو نزدیک شد، نگاهی به شاهزاده انداخت و از پری بانو پرسید که اون مرد کیه؟ پری جواب داد برادر این مرد شاهزاده احمد همسر منه. به این دلیل تو رو برای عروسیمون دعوت نکردم چون میدونستم خیلی کار داری و نمیخواستم مزاحمت بشم. با خودم گفتم که بعدا خبرت میکنم. با شنیدن این حرف مرد کتوله به شاهزاده احمد نگاهی کرد و گفت: خواهر، آیا کاری است که من باید برات انجام بدم، چون این مرد شوهرته من حاضرم بهش کمک کنم. پری بانو جواب داد: پدر اون یعنی سلطان میخواهد که تو رو ببینه، با اون به قصر پدرش برو. برادر گفت: اشکالی نداره، باهاش میرم. پریبانو جواب داد برادر امروز دیگه دیره تا فردا صبح اینجا بمون و فردا صبح همراه اون را بیوب. در این فرصتم من ماجرای عروسیمون رو برات تعریف میکنم. صبح روز بعد برادر از همه چیز خبر داشت. اون با شاهزاد احمد به طرف قصد رفتن. وقتی به نزدیکی قصر رسیدن هر کسی اونا رو میدید از ترس مرد کتوله پا به فرار میذاشت. بازی هم فریاد میزدن و به خونه‌هاشون می‌رفتن البته بعضی‌ها هم به جای اینکه فرار کنن مات و مفقود اون‌ها رو نگاه میکردند. خلاص اینکه تمام راه ها و دروازه ها از آدم ها خالی شده بود بنابراین شاهزاده و مرد کتوله به راحتی پیش سلطان رفتن چند نفر از خدمت‌کارایی که در کنار سلطان بودند با دیدن مرد کتوله محل نگهبانیشونو ترک کردن و فرار کردن بدون اینکه سلطان یا شاهزاد احمد چیزی بگن مرد کتوله رو تخت نشست و گفت تو منو احسار کردی با من چه داشتی سلطان بدون اینکه جواب بده دستاشو رو رو روی چشاش گرفته بود تا صورت اونو نبینه چون اونقدر از اون مرد کتوله و طرز صحبت کردن بیادوانش متنفر شده بود که دلش میخواست همون لحظه تبر بردارو به سر اون بکوبه اون در همین فکر را بود که مرد کتوله گفت شاهزاده چه کسی به شما بدی کرده؟ تو همون لحظه مرد کتوله با یه حرکت همه چاپلوسا و بدخواه های شاهزاده رو کشت اون هر بار که دستش رو بالا پایین می برد، چند نفر رو می تقریباً تقریبا هیچ کسی از گزند اون در امون نبودند. بعد مرد کوتوله تبرش رو روی دوشش گذاشت و از تالار بیرون اومد. در اونجا یکی دیگه از چاپلوسا رو دید. تصمیم گرفته بود به شاهزاده کمک کنه تا جونش تو امون باشه و حفظ بشه. او مرد به کوتوله گفت من میدونم که احمد دشمن بزرگتری داره اون یک زن جادوگره اجازه بدید اونو خبر کنیم که به اینجا بیاد او مرد فوری دنبال جادوگر فرستاد مرد کتوله هم تبرش رو بالا برد و گفت اگه دروغ گفته باشید سرت رو از تنت جدا میکنم او مرد گفت نه مطمئن باشید احمد برادر ناتنی منه و هر کاری که از دستم بر بیاد برش انجام میدم. خلاصه مرد کتوله جادوگر را پیدا کرد و اون رو هم به سزای اعمالش رسوند بعد با صدای بلند تو همه جا فریاد زد سلطان و پسرش به سلامت باشن. و بعد فوری لباس مجللی تن شاهزاده احمد کرد و اون رو تخت نشون و گروهی رو هم به دنبال خوهرش پریبانو فرستاد تا اون رو نزد سلطان و شاهزاده احمد که حالا دیگه شاه شده بود بیارن شاهزاده برادر شاهزاده علی و شاهزاده خانم نور نهار رو هم که در واقع هر دو بی تخصیر بودن حاکم یه ولایت کرد و اونها رو به اونجا فرستاد تا زندگی خوبی با هم دیگه داشته باشن بعد هم یکی از ولایت ها رو هم به شاهزاده حسین داد و اونم از لطف برادرش تشکر کرد به این ترتیب همه ی برادرات با شادمانی به زندگی خودشون ادامه دادن امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشیم سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها